گرایی چیست انواع استتگرایی کدام هااند چگونه تگرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان از درش است؟ راهکارهای کجد گرایی برای رسیدن بر ارتبا اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست این همه را در برنامه کت گرایی و افغانستان با عبدالقاهر خواهر از رادیو آنلاین راههرییشن شناین نباشید. بینندگان و همراهان گرامی در صفات اجتماعی معاصر، مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، ایلسو، سازمان اجتماعی سفید و رادی آنلاین را حضرشون سلام و و شما بخیر. و برنامه تضادگرایی و افغانستان خوش آمده. در این برنامه با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستانی، تضادگرایی را از زوایا و مناظر مختلف و بحث و بررسی می‌گیریم. چشمانداد این برنامه بررسی کارایی تضادگرایی برای گذار از و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابیم. عناوین فطرت‌گرایی کدام‌ها هستند؟ فلسفه تعدد در اندیشه‌های کثرت‌گرایی چیست؟ چگونه اندیشه‌های کثرت‌گرایی در راستای حل منازاد، و رسیدن به افغانستان صلح‌آمیز و مرفه بهره‌برداری نماییم؟ عبدالقاهر بهشتی هستم این سوالات را با تخصص علمی برنامه‌ام به کم کاش میگیریم. مهمان من در این بحث محترم دکتر امر صدر نویسینده توانا استاد دانشگاه و خجورهشگری ارشد در دانشگاه فیتسبورگی آمریکاست. دکتور صدر به برنامه خوش آمد. امید باشیم باشیم. شکر از اینم صدر بحث را از مفاهیم آغاز می‌کنیم. به نظر شما کسرتگرایی چیست و مفهوم کسرتگرایی چیگونه با وجود آمد؟ خوب مفهوم که اصدگاهی بیشتر برمیگرده به این روش سیاسی سی. که چگونگی برخورد ما را با تنوع فکری اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه تنظیم میکنه به این معنا که ما دو مفهوم متفاوت داریم حتی در دا زبان مشخصه در زبان انگلیسی که عادیات علوم سیاسی و فلسفی در زمینه کسادگرایی بیشتر در می تولید شده. واژه اصلی اولیه مشغل داوورستی است تنوع که در جامعه بعد وجود یک نوع از نگاه جامعه شناسی با تنوع فکری فلسفی اجتماعی فرهنگی در جامعه اما واجه به متفاعتر دو دومی که بیشتر بکر برده میشه نه دیورسی بلکه پروالیزمه است و پروالیزمه در زبان فالسی به کسردگراری ترجمه کردن که بیشتر برمگذر به منحله های فلسفی یا سیو سی و روش های سیو سی که چکنگی برسرد یک فالسی را در زمین تنوار تنظیم میکنند تن. Um, اما میشه گفت که در زبان فارسی موک کم چالش دهاییی زمینه داریم که لایک از گی رو و چه چیزی اطلاف میکنیم در زبان انگلیسی ابزون وارژه های متفاوت و مفااع متفاوتگر هم وجود داره یکی از اون مفااعیم Mulتی uh, است یا چند فرهنگهایی uh, که که گفتم می که یکی از نل های بسیار نزدیک با پروولزم است یا یکی از uh, بونه های میشه از فرولیزم هست اما بدون شک چیز متفاوت هستند اما اینال در درون نحله فرولیزم درایش ها متفاوت وجود دارد لبرال ها دیدهای خاص دارن دارند برابطه به بر چگونگی برخورد به بر تنوع و دموکرات ها و به ویژه متخخص اصلا میشه از نحله های دموکرات ها که بیشتر علاقمند مند هستند به چونگی فرداختن و تنوع ها و تفاوت ها او دلیبرتیک دموکراسی یا دموکراسی مشورتی است یا دموکراسی گفتمانی هستند که اینا روش خاصی دارن خب کل میشه گفت که چرا ما با کسادگرایی ما نیاز داریم یکی از دلایل اساسی است که جامعه بشری به طور مدام و مستدام همیشه درگیر در یک اختلافات هستند و اختلافات اختلافات میتونه به دو گونه باشه. اختلافات قطعی که تفاوت از نگاه جسترسی ما به اطلاعات و فکت هایست میشه. مثلا شما به صورت آیدی فرضی دو فرد را تصور بکنیم که ما روی یک موضوع مشخص دو فکت متفاوت یا دو واقعات متفاوت را به دارند. یا یک نفر دسترسی کامل با واقعیت ها نداره یک نفر دسترسی محدود داره یک نفر دسترسی کامل داره بنابراین خودش خود دسترسی کامل و یا دسترسی بر گناه های متفاوت از اثر یکی از جنبه های اختلاف است اما اختلاف اساسی و اساسی تر و تو اختلاف است که بر معنای اختلاف پنجاری فلسفی و اخلاقی است یا مورال دیساگرمنتس وقتی به انگلیسی میگن؟ ما تنها روی واقعات های تاریخی یا فرکت ها اختلاف نداریم بلکه به مبانی فلسفی که چگونه ادازی مختلاف داریم و میشه گفت که اختلاف تر است و کسی که یکی از نظریه پرداده جوان که در سال 2019 کتاب رو نفشه بنامه Political Proism, Disagreements and Justice یک به نام جولیان مولر در سال 2019 و این دونه و از تفاوات ها پرداختند اساسا که هستگرایی به این میپرداده که چونه ما میتونیم بالای تفایات ها چی تفایات روی حقیقت باشه یا این تفایات روی اخلاق ها و انجر ها باشد ما رو لسکتیم ما غالب هایم یا فایق کاریم در تمام نحله های کستگرایی من دادم درداری اساسیشون فرداختن به دا این مسئله است تشکر جناب دکتر با توجودهی که کستگرایی به قرار چند جانبه گرایی می پردازم. ما اما در میان خود کثرت و هم به نهله های مختلف جاشاه های مختلف متفاوت تقسیم شده چرا چند نوع کثرت گرایی داریم و چرا این تعدد دو وجود آمده خود مکتب کثرت گرایی در این موانی از این تفاوت فلسفی درستی که ما چگونه با اینی تفاوت ها کنار بیاییم یا سازش بکنیم یا رد بکنیم مثلا میشه گفت که لبرول ها بیشتر علاقه دارن که بر پروولزم اجتماعی بپردازند تا با پروولزم فرهنگی یا کصدگرایی فرهنگی و عذلی ل بسیار اضده کسی از یکی از دانشمنندهایی که به دا این زمینه کار کرده روی چند فرهنگرایی و Mulتییکالفرولزم به نام یک یا بانوی بود به نام آون سال دانشگاه شلوگو بودها سال 2006 با کرد و میگه لوبرلوه عمدن نهلیل لوبرالیسم عمدن خوش میکنند که از کسادگرایی فرهنگی فاصلت بگیرند و بیشتر متمرکز بشه بر کسادگرایی اجتماعی حالی این چی معنایی است مثلا فکر میکنند که انسان ها بواسطه فردگرا یعنی بذات فردگرا هستند میتونند تصمیم تصمیمات و سیاست مستقل و بگیرن و اگر اھیدانن ما بنوان افراد آز از گروه ها یا انجمن ها یا اجتماعات هم میشه در حقیقت او اجتماع انجمن مجموع از افراد است و باستاب دن و منافعی که او انجمن یا نهاد باستاب میتر در حقیقت حاصل جمع منافع تمام افراد است که داری انجمن کنار هم به این منع که او انجمن یا نهاد یا گروه حویت مستقل یا فرهنگ مستقل و مجزا از افراد را نداره در نهایت فرد است و منافع فردی است که مهیار و ملاک است و اگر ما از،, از،, از انجمن یا شما نامی میبریم او درقت نمیتونه که بلساط یک مزیت خاص نداره که ما حقوق انتصاب بکنیم و او را به اما در جانب مقابل کسایی که به کسیدگاه فرهنگی افلاق ماند استن و به ویژه دانشمند را که منام بردم، ایرستیان اونا باورد دارند که انسانها درست است افراد مختار هستند و مستقل از انجو از گروه و اجتماعات هستند اما در این حال فرهنگ بدون شک تاثیر گزار است در تاینکننده از در اشکال و شیوه های زندگی افراد و این مهم است که ما باید بنان انجامن روی گروه یا اجتماع را بنان یک کلیت فرهنگی برستیت بشنسیم و این فرهنگ از روش زندگی افراد را مشخص می سوزند بنان کسادگراری فرهنگی در, در راستای شناخت فرهنگ‌های های باشد. باشند مثلا شما روش زندگی در شمال افغانستانی یک گونه است شاید اولایت ها شرکتی و قربیل های افغانستان متفاعت باشد اگر این این ای دولت پشت بکنه که یک سطح خاص از زندگی اگر که گیر هم همگونی هم بسازد از بالا و پایان تطبیق بکنه این در افتر در فرهنگی ره میکنن این باید یک از گروه ها های از زندگی یا حضب از اونا اجتماع از سطح اجتما بنوان گونی دفع گونی دو وارم کسرگری هم کسرگری فرهنگی است که در جامعه غربی هم یکی از نهلوای بسیار مشخص از یعنی هم چند هسته، یا که من یک چند فرهنگی هست یاسته یا مولتیکالسولیزن. که ما اینجوری اگر کردم با ایجا بنوان فرانتید بوده بود، که این نهلوی فکری مشخص است. اگر در نتیجه بحران ماجرت و ادغام که ماجرین ناو تازه آمده است، وله اش فاد بعد در غرب آمدن او نهله در, در پاسخ با او بمیان آمد مثلا در جامعه مثل بریتانیا، آمریکا، کانادا جامعه یک دست و همگون بودن تو ایک زمان رو زیاد دارد در شروع قرن بیست مثلا جامعه اکثرا سفید پوست جامعه اکثرا مسیحی اما ایسایستا اینا در مارد و ماجورت با, با یک یک سری از بروه ها اشتماعی و فرنگی دیگر ماجور شدن که اینا هیچ گناه همخانی و تتابقه ملی با پشوارهای میزبان نداشتند. بنابراین دولت مجبور بود که اکسری اقدامات را بیگرد. یا این که اینا ای جمعات هم مکمل ادغام بکنند در متن جامعه و اونا را وادار بکنند فرهنگ بومی خودشان را ترک بکنند. و دومی که فرهنگ از اونا را بر اسمیت و از نه تمرین از او فرهنگره برای خود از اینا بنابراین افراد بنابراین اشتماعه ها مساعد بستادن کی در اقید در بعض این چهار شاید معافت بود مثلا کانادا که امروز سیاست کسدگیری از او خود را تجلیل می کنند. اما در جای دیگه با بحران با محاجزید مثل بریتانیا خاطر از اینکه این سیاست چند فرهنگرایی منتج با میان آمدن جوامه مجزا از هم یه هیچ نو دادستت تو تعامل میان فرهنگ ها و میان گروه‌ها این شأنو جدا باشون شوهید درقدرم شگاف خویش سمویره بشتر ساخت. این کثرت و تنوع ایش تو منجر و تعامل میان ازی گروها و از گروه در اقافت میتونه شگاف را میان باره چیزی که اکثر جامعه چی در افغانستان و چی جامعه غربی ایش شگاف اشما میبینین شگاف ازی که ما روی اصول اساسی یا فرهنگی اساسی که جامعه ما بر از ارزش سوال باشه تاهفق نداریم یک دست مردم مثلا به شدت دینگره هستند یک مردم به این باور رسیدند که دین نباید به تمام عرصه های ازنگی مداخل را بکنند. پر... پر... یک قسمت برنامه سوال مطرح میشه که در جامعه افغانستان که شما شاهد هستیم یک جامعه متحدد هست با فرهنگ های مختلف. یک جامعه چند فرهنگی هست. در به صورت طبیعی یک جامعه تسردگراه هست چیرونه در میان فرهنگ های مختلف در افغانستان بجای تمگونسازی فرهنگی سازگاری میان فرهنگی را تربیت کنیم که احترام به فرهنگ های متفاوت در جامعه نهاده نشونه و در راستای تعامل فرهنگی راهکارها و راهبوت های علمی و کاربردی مویثر شد خب من یک ملاحظه در آغاز دارم که میترس کنند جامعه افغانستان یک جامعه کسردگران نیست باز هم من ارجاع به مو پیش در آمد که من آغاز داشتم جامعه افغانستان یک جامعه متنوع است متکثر است به این اون است که ما متشکل است گناه های زندگی در عاشق مختلف فرهنگی است. ملت های مختلف ققوان مختلف قبائل مختلف مزاید مختلف ما در افغانستان داریم اما الزامن چگونگی برخورد ما با این تنوعه کساد کردنان نبوده ایمانا که ما این تنوع را در بسیاری موارد نمیپذیریم دوست نداریم یعنی در صدر تحمیل هویت یکی بردگر هستیم در صدر همگونیسازی هستیم در صدر حذ یکی دیگر هستیم اختلافات اخلاقی را مثلا اختلافات انجاری را بسیاری اوقات بر به تصنوجای خوشنطامی در افغانستان شده که تاریخ افغانستان حداقل مثال بسیار زن بیش از دوران اواخر افغانستان همیشه درگیر جنگ بوده. روی جنگ در آن در اصل چی است؟ این جنگ در چه هر نوع اختلاف است؟ اختلاف مذهبی یا اختلاف اختلاف های انجاری است. که آیا مثلا جامعه ما بر مبنای دموکراسی باشه یا نباشه؟ جامعه ما بر مبنای یک اصول دینی باشه یا نباشه؟ مثلا حقوق زنان در افغانستان تا چی حد یا مثلا ارزش های مثل آزادی تا چی حد باشن یه مسائل بوده که همیشه اختلافی بوده و یک اختلاف ها متاسکنه نه از روی تصال، نه از روی کسرگره نه از روی رواداری بلکه از روی یک نوه خودبرتربینی و تحمل و سرکوب مثلا به افغانستان انجام است رای حل Uh, مثلا میشه گفت که میکی از های که الکفلسوف معروف یورگن هابر ماست مطرح میکنه است که ما همیشه باید دریچه گفتگو یا تعامل را میشه باز, باز نگه داریم در میان با بایی گفتگو بدون شک یک سری از شرط های داره یکی از شرط های اساسیش بالا نظر داشت نظریه که هابر داره ایست که همه اعضایی که بال اما افراد که در یک جامعه زندگی میکنن با وجود اختلافات ارزشی یا سیوسی که دارن با وجود اختلافات خود را باید از روی جامعه اخلاقی واحد بکن دارن و دو سی مورد مشخص را اون مطرح میکنن یک کسایی که ادعای عقل مخالفت میکنن باید مسئولیت مناظره را به حاضر بگیرن شما نمیتونید که همشه ادعا بکنین که من مخالف نظر به تیه هستم اما هیچگاه آماده مناظره یا گفتگو نباید باشید برای هم کسی که ادعا میکنند که به مخال اختلاق نظر داره اختلاق نظر درست است اما باید همیشه خودش پیش در راستر مناظره باشه. دو کسانی که ادعای حق انتقاد را دارن، مسئولیت درک را با حده بگیرن. به ایمان که ما درست است انتقاد بکنیم و ما در این زمان یام بسیار روز مهم است و مسئولیت ما است که دیدگاه‌های طرف مقابل را درک بکنیم و بنی نظر نظر طرف مقابل را درک بکنیم در که خودش رسیدن به این مرحله خود درک یک اصالگری است چون اینکه که, ای ای که ادای حق نفوذ را دارند یا تاثیرگذاری را دارند باید این مسئولیت ما باید مست مل... نکردن را هم به عهده بگیریم به این معنی است که از هر نوع گفتگو ابراز نظر و موضع گیری که جامعه را به طرف تشنج رو برد و شاید التحاب اجتماعی ببره یا جامعه را به صورت خود شدن ببره شگاه های اجتماعی، شگاه های دیدگاه های اجتماعی را به که از او باید جلوگیری بکنند، از او اشناب بکنند و بلاخران چارمی کسایی که مدعی حق مشارکت هستند، مسئولیت متقاید کردن را بپذیرند، یعنی شما هفت داریم که در ایک اشتماعی سی و سی یا اجتماعی فرنگی مشارکت داشته باشیم اما در این زمان این هم مسئولیت شما هست که وقتی که, وقت که ابراز نظر میکنیم اید از پیش بدلی فکر نکنیم که چون نظر مزبنان همه گیره بپزیده این مسئولیت شما وقتی که ابراز نظر میکنیم باید که استدلال و دلیل کافی را میراه بکنیم تا که طرف مقابل یا متقاعد بنا. متقاعد ساختن بر مبنای x از, از اصول صورت نمیگیره که عمر همش گفت که رشنالیزیشن یا فردا اخلاقیات بر مبنای اینکه شما باز از نگاه ارزشی از خرد استفاده میکنین را استفاده نمیکنید و دلایل و ارائه کنید که دلایل باید طرف مقابل رقناب نکنه بنا کثرت جنوی فرنگی یا اجتماعی یا فسادگرایی هنجاری بر مبنای مورالتی یا موانجارها استوار است بدون شرک ما بخاطر رسیدن به حضور ناگذیر استیم که گفتگو را اصل و اساس قرار بتیم و این گفتگو با نظر داشت یعنی اصول که ما قبلن از اقل از دیدگاه هاورماس متراک کردم برای ما یک سری از اصول صورتی گیرم من در آغازم که اشورت تنوع و گناه های متفاوت کسادگری کردن که از نیلا هارم اذکر کردن که دموکراسی مشورتی است یا دلبریتی دمکراسی دلیفتر دموکراسی کسایی که نظریه فرداز رو از او که یکی از او بدون شک آور ماست است اونا باواد دارن که یک جامعه زمان رو که به اختلافات خواهی خواهی بیایه، و یا با تنوه کنار بیایی یا تنوه رو بپجیر بسوط مسئله متمیست تو اول بدون شک نیازمند یک نظام دموکراتیک است به اون است که تمام احاد از جامعه مشارکت داشته باشن. اما این یک دموکراسی نیست. بلکه دموکراسی است که زمینه و را فرصت را برای مشورت یا دلیبریشن یا گفتگو گفتگو در متفاوتی متفاقاتی گفتگو الزامن در سطح سی, سی نیست که مثلا در پارلمان صورت میگره بین اعضای پارلمان یا در سطح تقنیم بین کسایی که قانونگزار هستن گفتگو بینکن بلکه اشتماع های یا مینی پاپلکس در سط رستا یا در سط اجتماعات باید شکل بگیرد که نه خودشان ظرفیت و از اززیرت داشته باشند کهیت مسائل را در نتیجه گفتگو با هم دیگه رسمی بگیرن و در حال فصل بکن. در عرقت میشه گفت که دموکراسی مشوعی نه دموکراسی است که زمینه مشارکت مردم را بیش از بیش نه به صورت نمادی نه تنها در انتخابات بلکه فراتر از انتخابات. در تسمینگریای روزمره مساعد که میگن حمایت داری دموکراسی که ای یا دموکراسی در تفاوت بین ای گوورننس یا حکومتداری الکترونیک و دموقرسی الکترونیکی است، که حکومتداری الکترونیک از بالا پایان صورت میگره ایست که دولت کشش میکنه که فرایند حکومتداری و دولتداری در بیشتر از بیشتر یعنی سالتر بسازه و از با نظر داشت تکنولوژی جدید دولت را بیشتر در خدمت مردم قراره بده اما ای از بالا صورت میگره برعکس دموکراسی الکترونیک دروهای اسکی مردان ابداع میکنند و خلق میکنند و ابتکار به خرج میاتند که چگونه دموکراسی بیشتر از بیس در اساس خودشان شوند. تسامین نه تنها در مسائل اساسی مثل مسائلی که به مسائل پرداختن به قانون اساسی است بلکه در مسائل بسیار اساسی روز آساده‌ی روزمره مثل پالیسی ها مردم باید مشارکت داشته باشند. منتر به شما رابطه بین بینی انواهای را چیگو نی و ب نتونین در تقدم و ترتیب اولویت با کدام رو از کت گرایی هست الاعضا تقدم تا آخر بین گونه های از وجود نداره به خاطر که بی گونه های متفاات بر مبنای گونه های متفاات از فلسفر سییاسی سووار است مثلا نهل ملتی کلچولزم یا چند فرهنگرائی الزامان توسط لبرال ها قبول نمیشه بسیاری لبرال ها او روی کرد را گمراه کننده می یا به میترکیب کسان افترادار قل با و اختلافات و تکثر و تنوع بار استفاده از روش دموکراسی دلیبریتی بستند اونا،, اونا هم در سیاری موارد با لبرال ها اختلاف نظر دادند و روش لبرالی ده مثلا مصلا روش جان رالز است استفاده میکنه و پیشنات میکنه او را ناکار ها میپلد برن و را مثلا نحله چهار هم که اگه تذکر بودم نحله است بنامه مورس و بندی کیم یکی از را لبرال ها است اما طرفداران داران به مورس و یا کسانی هستند که میگن ما الزامن نیازمند دسترسی به اجماع یا دسترسی به رسیدن به یک رای حل تام شمول نیستند در در تمام موارد به خاطر چون این چیز اجماع در موارد ممکن نیست شما اجماع بکنید نه یک جامعه ممکن است در, در تمام مسائل شما بکنند و این یک مبنای فلسفی داره مبنای فلسفی چیست که آن چیز که ما بنون ارزش‌های علیا یه این ارزش‌ها علیا در ذات خود کثرت‌گرا هستند در ذات خود متنوع هستند در حالی که اینا متنوع هستند در این زمان ما نمیتونیم ای ها را از نگاه اون تنوعی وجود داره ما تقدم و تاخیر بکنیم یعنی بگیم که ای ارزش بهترین ارزش است باید در قرار بگیره اولویت داده بشه و ای ارزش های دیگه به مراتب پایین‌تر مثلا شما بین ارزش آزادی و عدالت چگونه ممکن است تقدم و تاخیر تصمیم بگیریم؟ آیا عدالت در داره, داره یا آزادی نمی ارزش مثلا صالح و برابری یه ارزش هایست که الزامن با ایک در تضاد نیستن اما معانی متفاوت دارن دو ترم مفخص انگلیسی که در زمین حدود دارن نگید که incompatible incompatible incompatible با اینوان است که این یه ارزش ها بسیاری اوقات ایک دیگر متلاقی نمیکنن یا همسان نیستن و این انجوربل بین که اینا قابل ردیف بندی نیستن. اما همون قبلا ذکر کردیم من میشه گفتم که عدالت ارزش پرقدرتر و مهمتر است نسبت به آزادی یا برابری بنابراین مودس وابندی نه له مودس بندی بارمن باقی هستند که ما بیشتر از که ما در راستای حل اختلاف و آن بهتر است که وضعیت قانونی رو بپذیریم خب اینال وید فضیرفتن وضیعت که میان برای منانیست که ما دنبال حفظ یکی دیگه باشیم وید فضیرفتن وضیعت که نیست که ما تنواهی که وجود داره آنچنان که وجود داره در جا میخواد با او سرسازش بکنیم و خوش نکنیم به طرف مقابل را اتمن تتمیه بکنیم یا اتناب بکنیم که روش که ما میگم یا دیدگاهی که من او روش ابدی و و در نهایت دوش است که با خب در یعنی اگر جنبندی بکنو گفای من به طور کل میشه گفت که دوری روی که در رابطه به کسیدگری وجود داره. کسایی که باورمان دستن خب واضح ما هایی در دنیا متکسر و جانو متکسر زندگی میکنیم اما ما توانایی و امکان دسترسی به اجماع را داریم یعنی میتونیم از اختلافات فرنگی اقتیدتی سیاسی افراد و این که وجود داره گذار بکنیم بریم به طرف رای اگنو اجماع این ها بشتر که که هستند لبرال ها هستند در داران دموکرسی مشورتی و تلبریتی و در جای هم مثلا چند فرنگره هستن. هستند اما در سوی دیگر فیروان دیدگاه مودست فبند می‌نو، کانت باور دارن که عرض عرض، در آغاز ارزش متعالی وجود نداره، اولتیمیت والیو که برمنوعی از و تمام مبانی اجتماعی و نظام سیاسی قرار ماستورار بکنین، چنین چیزی وجود نداره در جامعه. فرض مثال، پیش ما ارزش متعالی عدالت است، پیش شما ارزش متعالی شاید صلح باشه یا در جای برابری باشه یا در جای آزادی باشه. و وقتی که تفسیر من از این ای مثال متفاوت باشن از و این تفسیرها شاید سازگار با هم دیگه نباشن. بنابراین ولش با از سازگار نباشن این بسیار دشوار است که ما جمع بکنیم باهم. بنابراین این ترافیک مورد برندی میگن که حتی لبرال های مثل جان لاک که از تازه نام می بردن یا اینوان میکنند تازه هول رک جان لاک همون استفاده میکرد. در نهایت یک محدودیت های داشت. جان لاک در هاید در, در چارچوب منظومه فکری ایساویت آن زمان تساؤل مطرح می میکرد کسانی که بیرون از دایره ایساویت بودن با اونا تساؤل از مزیت تساؤل برخوردار نبودند و دولت در باور جانالات مستلزم نگهداری یک نهزم بود که ارزشهای اکثریت را باید فازت بکنند برحال یعنی ما روش های از چونگی برخورد با تنوه و اختلاف نظر را داریم اما چند مسئله را با میشه که بفایدیدیم به نوان اصل که جوامی چی در افغانستان و یا بیرون از افغانستان بشرت متکسر است یک کسیت از نگاه اخلاقی است مثلا ما به از از اخلاقی باید بند است شما نیستیم منظور از اخلاقی مورالیتی است مبانی فلسفی و انجاری است و در این زمان فرهنگ ها متفاوت است چی دولت، چی اقتصاد اگر بخواهد که این تنور از بین بگرد چی این چیز ممکن است؟ شاید بعدینه بسیار گذار مثلا از بین بردن، زندگی بسیاری ها تمام شود، اما در افتاد تکثر اگر ایک در ایک جا شود، در جای دیگه غلیان نکن دکتر صدر، اگر به لحاظ کار کردی حسرتگرای بررسی کنیم، بنادار شما کار کردی و حال منادر سیاسی در اخوانستان چیگونه است؟ ما پرداختم دیگر، خب اینان چما از اصلاح کسادگراهی سیاسی نام باریم کسادگراهی سیاسی بیشتر به رست نشناختن حق مشارکت شهروندان در نظام سیاسی گفتن میشه آنچه که ما تا صحبت کردیم، الزاما کسادگراهی سیاسی نبودو کسادگراهی فرهنگی و کسادگراهی هنجاری اخلاقی مورال دستگیوی بینس بود ما چکن است هایی که از نگاهی ارزشی و فلسفی داریم رو کنار بذاریم او البته خود بدون شک سیاسی ام به زبان ساده به عبارت دیگه کاتگوری سیاسی عبارت از ساده ترش دموکراسی است دموکراسی نظام است که مشارکت همگان تا چی با تمام برنامه‌های سیاسی متفاوت چی چپی باشه چی راستی باشه چی محافظکار باشه چی لبرال باشه چی اسلام‌گرا باشه چی غیر باشه و این طور Um, اما بدون شک اصدگاره سیاسی مستلزم مزید است که تمام کسایی که بنوان فعال یا کنشگر یک نظم سیاسی هستند یک سری از اصول ده که پایه های از نظم سیاسی برمنان از اصول بپرزیدند به این مانا که کسانی که انقلابی فکر می‌کنند در راستای براندازی نظام باشند پس کنین شما یک سری از کسایی که از نهلی سنتگاره و میرین هستند که یک نظام سیاسی پس نظام کفری هست و این باید منطلب شد. خیلی در اقت نقصد تصدگرایی سیاسی هست بخاطر شما یک ایده است یک طیف گسترده از مردم و که مثلا بارمند و متضاد شما یا مخالف شما دارند، او را به رسمت نمیشنستیم و در راستای و از اونها ساختن نظم سیاسی هستیم. بنان ام مسترس کاتریسی سیستم است که دیگه احترام دیگه است که همه بکنیم. اجازه بدین در نظم سیاسی باشه اما این زمان نظم سیاسی باید که مشوزه مشارکت همگان باشه باید متفاوت مسائید بسازند یکی از بارونایی که من قبل نمیشو کردم در جامعه یونانی چی غرب با چی افغانستان معمولا من فکر کردم دو روزی که بکنم به خاطر از اینکه معمولا هم خانون ما در افغانستان همیشه دوست دارم که عیب‌های اویوب جامعه غربی رو برجسته بررسی بکنم و در عوض بگن که افغانستان به این نقص است این است که از دو جامعه از روند جنبشات سیاسی و فرهنگی سی و سیاسی و فرهنگی هست به این مونات جامعه به دو قادر متضاد که این دو قادر نمیتونند با امریکت گفتگو بکنند از سی سیاسی تدخیم شدند و, و در شدن. بسیاری موارد تو میشه که شما گروه مخالفتان به غیر ملی میپندارین یا زد ملی میپندارین بنان با لیبل زدن و زد ملی بسیار آسان میشه از اینه که شما او طرف مقابل را حس بکنین از میدان بسیار جای پایان میه خب بنان خوب است که به خاطر حل از شوراهای سیاسی ما و ارزش اقتصادگری سیاسی ده به پیدا و همه گیر فرصت و احتمال از زیر بتیم که در میدان سیاسی رقابت میکنند و حضور داشته باشند تشکر جناب دکتر صدرع از حضور شما در برنامه اقتصادگری و افغانستان یک جهان سپاس ممنون از یک فرصت گذاشتین و وقت خودونو در اختیار ما و همتایان و بینندگان برنامه‌ گذاشتید همراهان و شنوندگان گرامی در صفحات اجتماعی معصی متعالی افغانستان ایلسو سازمان اجتماعی سفید و راژی آنلاین راه از همراهی شما سپاسگزارم تا دیدار دیگر و برنامه دیگر شما را به خدا آنده متعال نستم برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر کردید.